باد از سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشک بار خواهم کرد به هر زبیمه و معشوق عمر می گذرد بس از امروز کار خواهم کرد حراب روی که اندوختم زدانش و دین نسار خاک ره آن نگار خواهم کرد ششم اصوه دمم شد زمهر او روشن که عمر در سر این کارو بار خواهم کرد بیاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت بنای عهد قدیم مستوار خواهم کرد سبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل قدای نکهت سوی یار خواهم کرد نفاق و زرگ نبخشد صفای دل حافظ طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد